این داستان حکایت مرد فقیر نقل این داستان از عقول دردی از بندر ترکمن روزی روزگاری توی ده مرد فقیر با زن و بچه های قد و نمقدش زندگی میکرد زن همیشه پیش مرد گله و شکایت میکرد که تو نه نکار میکنی و نه از خونه میای بیرون همیشه میخوری و میخوابی. با خوردن و خوابیدن تو که شکم ما سیر نمیشه زن گفت و گفت تا بالاخره مرد به خودش اومد و توشه سفر برداشت و از زن و بچه هاش خداحافظی کرد و رفت دنبال کار رفت و رفت و رفت تا به شهری رسید توی اون شهر مرد ثروتمندی زندگی می کرد که زمینای زیادی داشت و اسبای فراوونی هم داشت. مرد فقیر پیش اون رفت، از حال و روز خودش تعریف کرد و گفت هر کاری باشه انجام میدم تا بچه‌هام گرسنه نمونن. مرد ثروتمند که خیلی دلسوز و مهربون بود، قبول کرد تا اون رو به عنوان خدمتکار خودش نگه داره. فقط به این شرط که سر هر ماه یه سکه بهش بده مرد فقیر هم قبول کرد یک ماه و دو ماه و سه ماه و یک سال گذشت مرد فقیر تونست در عرض یک سال دوازده تا سکه پس انداز کنه یه روز کاروان تاجر انار از اونجا میگذشت مرد تاجر انارای خوش رنگ را از این شهر به اون شهر میبرد و میفروخت. فروخت مرد فقیر با دو تا سکه ده تا انار خوش رنگ خرید و ده سکه و انارها رو برای زنش فرستاد زن مدتی سکه ها رو خرج کرد و یه روز دلش خواست یکی از انارها رو بخوره یکی از اونا رو برداشت و خواست نصفش کنه اما هرچقدر چقدر زور زد سون رو بشکنه. انار سفت سفت بود. چند تا دیگه انتخاب کرد اما اونها مثل اولی بودن. با عصبانیت کنارشون گذاشت و با ناراحتی گفت: مرد، خجالت نمیکشی؟ یه سالی که به خونه و زندگی سر نزدی تا ببینی ما چیکار میکنیم حالا هم برای من انارای سفت و غیر قابل خوردن میفرستی؟ یکی دو روز گذشت زن یکی از انارها رو برداشت و به آهنگری رفت مرد آهنگر بعد از چکش زدن بر روی اون گفت این انار رو نمیشه خورد این یه انار استثناییه باید اون رو به زرگر نشون بدی زن انار رو به زرگری برد زرگر اون رو دید و به قیمت خوبی خرید زن با پولش برای خودش و بچهاش لباس و با باقی مونده اون قطعه زمین خرید. زن با فروختن انار دومی قصری ساخت و با سومی هم برای خودش کنیز و کلفت استخدام کرد. چند سال گذشت، مرد فقیر نگران خانواده شد. از اربابش اجازه خواست تا به خونش بره. اربابش اجازه داد و گفت تو خیلی برای من زحمت کشیدی. بعد دستور داد روی یکی از اسب‌ها خورجین بندازن یک طرف اون رو از سکه‌های طلا و طرف دیگرش را از گندم پر کردند. مرد فقیر با تعجب گفت ارباب من نمیتونم این همه رو از شما قبول کنم. مرد ثروتمند گفت نه این حق توه بیشتر از چیزی که فکر میکردم برای من و زمین و اسبام زحمت کشیدی ولی حالا که میخوای راهی سفر بشی میخوام یه نصیحتی بهت بکنم ارباب حرفاشو ادامه داد و گفت اگه بین راه خواستی تو خونه استراحت کنی اگه صاحب خونه زنی با چشمای سبز و سیاه و زشت بود تو اون خونه نمون. و برو جای دیگه منزل کن اگه تو بیابون خوابیدی، سعی کن کمی از راه دور باشی مرد فقیر عرباب رو تو آغوشش گرفت و باش خداحافظی کرد و راهی خونش شد بعد از یه روز راه رفتن نزدیکی های به روستایی رسید جلوی خونه پیاده شد و با صدای بلند گفت صاحب خونه مسافر هستم اجازه میدی امشب رو اینجا مهمون باشم از توی خونه زنی با چشمای سبز و سیاه و زشت بیرون اومد مرد یاد حرفهای اربابش افتاد عذرخواهی کرد و رفت کنار اون خونه چادوری برپا بود دوباره گفت صاحب خونه مسافر هستم میتونم امشب رو مهمون باشم از داخل چادر صدای پیرمردی اومد بفرمایید تو مهمون حبیب خداست پیرمرد اون رو به داخل چادر برد و ازش پذیرایی کرد اسبش رو کناری بست و براش آب و علف گذاشت مرد فقیر بعد از خوردن غذا خورجین رو کنار گذاشت و خوابید صبح قبل از رفتن از خورجین چندتا سکه در آورد و به پیرمرد داد. پیرمرد خنده کرد و گفت این چه کاری پسرم من برای پذیرایی از تو انعام نمیخوام. مهمون با خودش برکت میاره. مرد فقیر سکه ها رو تو دستای اون گذاشت و گفت حالا که من رو پسرم خطاب کردی پس از پسرت این سکه ها رو قبول کن. اینو گفت و سوار اسب شد از پیرمرد خداحافظی کرد و به راه خودش ادامه داد زن چشم سبز و زشت که جادوگر بود به فکر افتاد خورجین پر از سکه های مرد را از چنگش بیرون بیاره پس همراه غلامش سوار اسب شد و به تعقیب مرد رفت شب مرد فقیر که به تاریکی برخورده بود خواست پیاده بشه و کنار را استراحت کنه که به یاد حرفهای اربابش افتاد. با خودش گفت بهتر حرف ارباب رو گوش کنم. هرچی باشه مرد دانایی بود. پس به سرعت از جاده دور شد و تو تاریکی جنگل پیاده شد. عصف رو به تنه درختی بست و خورجین رو زیر سرش گذاشت و خوابید. از اون طرف زن سیاه و جادوگر و غلاماش مرد فقیر رو گم کردن و از اون فرزنگ ها دور شدن صبح مرد فقیر با صدای پرنده ها بیدار شد و سوار اسب شد و به طرف خونش رفت وقتی به خونش رسید از زن و بچه خبری نبود کلبش مخروبه شده بود و ویرون نگران شد. رفت و از همسایه ها پرسید زن و بچه های من کجا هستن؟ همسایهش که تازه اونجا آمده بود پرسید کدوم زن و بچه ها رو میگی؟ مرد فقیر با ناراحتی گفت فقیرترین زن این روستا که خودش و بچه هاش و شوهرش لباسای کهنه و پاره پوره میپوشیدن. مرد همسایه با ترس و یواش گفت هیس اینطور نگو؟ اون دیگه بانوی فقیر این ده نیست. اون کت خدای ده شده. مرد فقیر نمیتونست حرفای اون رو باور کنه. مرد همسایه به تپه اشاره کرد و ادامه داد. اون قصر سفید رو که میبینی متعلق به اربابه اگه باهاش کار داری میتونی به اونجا بری. چون مشکل گوشای هم است. مرد فقیر، با ناباوری سوار اسبش شد و به سوی قصر رفت. وقتی به قصر رسید، دو تا نگهبان صد راهش شدند و گفتند کی هستی و چی میخوای؟ مرد گفت به بانوت بگو فقیرترین مرد این روستا که چند سال پیش برای کار و سیر کردن شکم خونوادش راهی دیار غربت شده بود، دوباره برگشته. نگهبان رفت و گفته های مرد رو به بانوی خودش گفت زن تو جوابش گفت با احترام بیاریدش داخل اون کسیه که باعث این همه ثروت شده مرد فقیر رو با احترام به داخل بردن اون بچهاش رو به آغوشش گرفت و به زنش گفت من خواب میبینم یا اینا حقیقت داره زن تو جوابش گفت اینا از برکت انارایی که برام فرستادی هنوز هم هفتا از اونا باقی مونده. اونا رو برای روز مبادا کنار گذاشتم. بعد ماجرا رو از سیر تا پیاز برای شوهرش تعریف کرد. اونا انارها رو به قیمت خوبی فروختن و سالهای سال به خوبی و شادمانی در کنار هم و مردم روستا زندگی کردند.